بسوی نور قسمت سیوم بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم با قسمت سیوم از مجموع گفتگوهای سوتی بسوی نور در خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای محمدی هستیم آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستیم خیلی مچکر پیروان سنت و جماعت و تشیعو مدعی که برای فهم بسیاری از آیات قرآن باید به افراد خاص مثل پیامبر و امام رجوع کرد چرا که به ادعای اونا تنها پیامبر و امام تعویل آیات رو میدونن در همین حال یک ای در قرآن کریم هست آیه هفتم سوره آل امران که به نظر میرسه که خلاف این ادعای مذهبی اون رو شهادت میده لذا درخواست میکنم از جراب آقای محمدی که آیه هفت سوره آل امران رو در این برنامه بررسی بفرمایند تا صحت و سقم ادعای تشییو و تسنن با استناد به آیات قرآن مشخص بشه در خدمت شما هستیم بسم الله الرحمن الرحیم من در ابتدا از شما و شنوندگان عزیز دعوت میکنم که متن آیه 7 سوره آل امران رو دقت بفرمایید تا بعد ترجمه آیه و تحلیل خودم رو خدمتتون ارز کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 والراسخون في العلم يَقُولُونَ آمنا به كُلُّ مِنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ حالا ترجمه آیه هفت سوره آل امران رو براتون میخونم او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد آیاتی از آن احکام الهی است که قانون کتاب می باشند و آیاتی از آن بازگرداندنی هستند اما کسانی که در قلبهایشان کشیست به دنبال آیات بازگرداندنی میروند تا آشوبگری نموده و پشت پرد سازی نمایند در حالی که پشت پرده آیات را کسی جز الله نمیداند و عالمان ثابت قدم میگویند که ما به کتاب ایمان داریم و همه کتاب از جانب پروردگار ماست و البته جز صاحبان فهم متذکر نمیگردند دوستان عزیز اجازه بدید که به بررسی دقیق و بخش بخش این آیه بپردازیم او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد همان طوری که واقفید ما در برنامه‌های قبلی گفت‌وگوهایی به نور با استناد به آیات قرآن نشون دادیم که تنها قرآن بر محمد نبی وحی شده تنها قرآن بر محمد رسول الله نازل گردیده و احادیث یا روایات یا تاریخ به هیچ وجه محلی از اعتناع در شریعت آلی اسلام ندارن لذا در ابتدای اینهای هم می بینیم که قرآن تأکید میکنه که الله رب العالمین کتاب رو نازل فرموده و ملاک و مبنای ایمان ایقان و حق فقط کلام الله است بلا غیر ادامه آیه هفتم سوره آل امران رو دقت بفرمایید آیاتی از آن احکام است که کانون کتابی باشند آیات و محکمات یعنی آیات شامل حدود و احکام الهی اینها کانون کتاب هستند به عنوان مثال آیاتی که خاندن غیر الله رو برای حاجت خواستن مدد خواستن شفاعت خواستن حرام و باطل فرموده یا آیاتی که امر به احسان نسبت به پدر و مادر نموده ربا رو کمفروشی رو دزدی زنا قتل قمار و خمر و حرام فرموده و از این قبیل آیات اینها قانون و حسی دیانت اسلام و کتاب الهیند و آیات و محکمات نام دارند اما در ادامه آیه هفتم سوره آل امران میفرماید و آیاتی از آن بازگرداندنی هستند آیات متشابهات به زبان فارسی یعنی آیات بازگرداندنی یعنی آیاتی که به هم ارجا میدن و با هم مرتبطند یعنی آیاتی که توسط آیات خود قرآن و همچنین کتب من قبل تبین و توضیح داده میشن دقت بفرمایید که اعمی فرقه های زاله مزحبی اینطور به مقلدین القامی کنند که متشابهات یعنی آیاتی که دارای ابهامند. و لذا نباید از آنها تبعیت کرد در حالی که قرآن آیات مبهم نداره بلکه ویژگی کلام الله اینه که خودش خودش رو توضیح میده و این مسئله در آیه 23 و سوره زمر اومده میفرماید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابحا مثانی یعنی الله سخن نیکو را نازل کرد به صورت نوشتی بازگرداندنی و تکرار شونده یعنی کلام الله مملو هستش از آیات بازگرداندنی آیات هم موضوع آیات مرتبط که بایستی در کنار یکدیگر فهم بشن اینکه قرآن فرموده فقر اوماتیسر من قرآن در سوره مزمل آی بیست قرآن کریم برای همینه یعنی تا آنجا که براتون میسر قرآن رو بخونید کتب قبل رو بخونید تا با مطالعه مستمر کلام الله به فهم دقیق آیات پی ببرید لذا تشابه و هم موضوع بودن بسیاری از آیات کلام الهی با هم سیاق بیان کلام اللهه ویژگی منحصر به فرد کلام الله که مخاطب رو اینطور تعلیم میده و به هیچ وقت به معنی قامز و مبهم بودنش نیست آقای محمدی در کتب من قبل هم همینطوره شما تا تمام صحیفه های تورات مقدس میقرا یا همان عهد عتیق و چهار صحیفه انجیل رو به دقت نخونید پیام رو نمیگیرید اگر آیات کتب رو در پرتوه هم فهم نکنید حتی دچار اشکالات متعدد هم میشید همین طوره برادر گرامی حالا اجازه بدید که نمونه از همین آیات بازگرداندنی رو از قرآن خدمتتون ارز کنم به عنوان مثال آیات پیرامون جنگ و قتال آیات بازگرداندنی هستند چرا؟ به این دلیل که آیات پیرامون مسئله قتال در سوره های متعدد و قرآن قرار دارن و هر کدوم حسب شرایط متفاوت در سورات مختلف رو مقرر کردن مثلا در سوره به جنگ ام کرده در سوره دیگه میفرماید اگر به سور گرویدن شما هم به سور بگروید و در یک سوره دیگر جنگ رو تاری کن شدن فتنه دینی واجب فرموده پس برای فهم واقع بینانی مسئله قتال فی سبیل الله در قرآن باید همه آیات مرتبط با مسئله قتال رو بررسی کنیم نه اینکه فقط به یک سوره اکتفا کنیم نه اینکه فقط به یک آیه بپردازیم نه اینکه با آیات برخورد التقاطی کنیم خوش چینی کنیم و بخشی از آیات مرتبط رو کتمان یا مخفی کنیم چرا که هر آیه یک زاویه از تعالیم الهی رو بازگشایی میکنه و اگر آیه رو از قلم بندازیم همانجا مشکلات آغاز میشه این نمونه اینی تعریف آیات متشابهات یا بازگرداندنی بود که خدمتتون ارائه کردن حال برمیگردیم به ادامه آیه هفتم سوره آل امران اما کسانی که در قلبهایشان کجیس به دنبال آیات بازگرداندنی می تا آشوگری نموده و پشت پرده سازی نمایند در حالی که پشت پرده آیات را کسی جز الله نمیداند، اینجا قرآن نکته بسیار مهمی رو به ما تعلیم میده. میفرماید که برخی افراد از آیات بازگرداندنی سوء استفاده میکنن تا در دین فتنه و آشوب ایجاب کنند، یعنی به جای اینکه آیات مرتبط و بازگرداندنی رو در کنار هم فهم کنن به دنبال پشت پرده ساختن یعنی تعویل برای آیات میدن تا کلام الله رو تحریف کنن در حالی که کلام الله در سایه قرآن و کتب منقبل یعنی آنچه الله نازل فرموده بایستی فهم بشه و یه مساق عینی از فتنگری ها و آشوب ها همین مسئله شعن نوزو تراشیه ما در برنامه پونزده همه گفتگوهایی به سوی نور بهش پرداختیم گفتیم که شیعه و سنی داستانهایی رو به دروغ میسازن و اونها رو منگوله و زمیمه آیات میکنن تا با این تکنیک برای آیات پشت پرده بسازم مثلا آیه سوم سوره مائده رو مدنظر بگیرید که درباره اهمیت قضای حلال و حرامه مراجع تقلید تشیع با تزریق احادیث و روایات و برخورد التقاطی با همین آیه امامت ساختگی علی ابن ابی طالب را به خورد مقلدینشون میدن در حالی که پیام این آیه درباره اهمیت حلال حرام در دین اسلامه نه اون عباطیلی که مذهب تشیع در قالب روایات و حدیث منگولی این آیه نموده یک نمونه دیگه از این فتنگری ها مربوط به اهل سنت و جماعت که مفتیهای این مذهب با برخورد خوش چینان از عبارات و الرسول در قرآن سنت نبوی رو اختراع میکنن در حالی که تنها پیامی که از جانب الله بر محمد نبی نازل شده همین قرآنه نه احادیث و روایاتی که سنی ها رجوع میکنن حالا یک نکته مهم که باید اینجا مد نظر قرار بگیره مجازات همین فتنگران در دین از منظر قرآن حسب الامر متن مقدس قرآن کریم آشوب در دین حتی از قتل قتل نفس هم شدیدتره قرآن در دو آیه سریعا اشاره فرموده و فتنه اشد من القات سوره بقره آیه 190ی که قرآن کریم والفتنة اکبر من القاتل سوره بقره آیه 217م قرآن کریم یعنی سزای کسانی که با تعویل و سانسور برخی آیات آمدان و مقرزان کلام الله رو تحریف کنند شدیدتر از مجازاتی قاتله و این اهمیت فوق موضوع رو میرسونه جالب اینجاست که همین فراز از آیه هفتم سوره آل امران به ما میفرماید که تعویل یعنی پشت پرده آیات رو احدی به غیر از الله نمیدونه اما باز شاهد هستیم که فرقه‌های ظاله مذهبی حتی همین فراز را هم تعریف کردن و میخوان به دروغ وانمود کنند انسان‌های وجود داره که دانای کل قیبند و پشت پرده آیات رو میدونند در حالی که قرآن در آیات 26 الی 28 سوره جن فرموده که الله قیب رو فقط بر رسولانش نازل میکنه و پیامبرانش هم اون قیب رو بدون کم باز تأکید میکنن بدون کم و کاسی به مردم ابلاغ میکنن و لذا قیب همین قرآنیست که امروز پیش و روی ماست که البته ما با کمال تأثیف اون رو نمیخونیم حالا عزیزان به این بخش از متن عربی آیه هفتم سوره آل امران دقت بفرمایید و ما يعلم الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به نکته مهمی هم در این بخش از آیه است که خدمتتون متع می‌کنم در مورد واو بین الله و راسخون فی العلم که عمدتا مذهب تشیع بهواسطه جهل مردم میخواهد اینطور القا کنه که تعویل آیات رو جز الله راسخون فلعلم هم میدونن و این واف رو واف عطف در نظر میگیره در حالی که اگر راسخون العلم و الله رو به هم عطف کنیم ادامه آیات اینطور میشه که الله سبحان در کنار راسخون العلم به کل کتاب ایمان رو برده یا آیا الله تعالی به خود میفرماید همه از نزد پروردگار من است اینکه کفر مطلق به عبارت دیگه مذهبیون با این ترجمه غلط خالق و مخلوق رو یعنی الله و بندگانش رو در ردیف همدیگه قرار میدن در حالی که قرآن در آیه 17 سوره نحل میفرماید افمن یخلق و کمن لا یخلق افلا تذکرون یعنی آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند آیا متوجه نمی شوید یا مگه هر روز ما نمی گیم قل هو الله احد مگه هر روز ما نمی خونیم ولم یکن له کفو وان احد حالا چطور میشه که برخی از مترجمین اینجا برای ترجمه خالق و مخلوق رو کنار همدیگه دیگه قرار میدن احسنت بر شما برادر عزیز حالا ترجمه مابقی آیه 7 سوری آل امران رو براتون قرائت میکنم و آلمان ثابت قدم میگویند که ما به کتاب ایمان داریم و همه کتاب از جانب پربردگار ماست و البته جز صاحبان فرم متذکر نمیگردن خب اینجا هم اشاره قرآن کریم بر کل کتابه یعنی تأکید میفرماید که تنها راه کسب علم از قرآن و کتب من قبل بررسی همه آیاته نه اینکه بخشی از آیات رو سانسور کنیم یا عوض رجوع به کلام الهی سراغ احادیث و روایت و ضد اطلاعات فتنه برویم لذا ملاک فهم کل متن مقدسه نه برخورد التقاطی خوش چینانه با آیات الهی حالا برای جنبندی بار دیگه ترجمه کامل آیه هفتم سوره آل امران رو برای شنوندگان محترم قرائت میکنم او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد آیاتی از آن احکام الهی است که کانون کتاب باشند و آیاتی از آن بازگرداندنی هستند اما کسانی که در قلب هایشان کشیست به دنبال آیات بازگرداندنی میروند تا آشوبگری نموده و پشت پرده سازی نمایند در حالی که پشت پرده آیات را کسی جز الله نمیداند و عالمان ثابت قدم میگویند که ما به کتاب ایمان داریم و همه کتاب از جانب پروردگار ماست و البته جز صاحبان فهم متذکر نمیگردند که از این برنامه داریم اینه که حسن کلام الله بازگرداندنی بودن آیاتشه و بازگرداندنی بودن قرآن به این معنیه که قرآن با قرآن و کتب من قبل توضیح داده میشه و تفهیم میشه اما فتن انگیزان و محرفین دین به جای فهم و موضوعی آیات بازگرداندنی به دنبال خوشی چینی و سانسور برخی آیات میرن تا آیات رو تعویل کنن و مردم رو از متن مقدس باز دارن نمونه عینی همین فتنگری ها شعن نوزو تراشی های شیعه و سنی برای آیات قرآن که مثال هایی از اون رو بررسی کردیم همچنین متذکر شدیم که فتنگری و ایجاد انحراف در پیام آیات الهی از نظر قرآن شدیدتر از قتل نفسه و در دنیا و آخرت مجازات سنگینتری داره الله که آیه هفته سوری آل امران برای دوستان مخترم تفیم شده باشه تشکر میکنم از جناب آقای محمدی بدین ترتیب درسی که از آیه هفت سوره آل امران گیریم، اینه که تنها کسانی دوچار سردرگمی در فهم قرآن میشن که متن مقدس قرآن رو با قرآن و کتب من قبل فهم نکنن و این سردرگمی حتی میتونه خیلی راحت به یه انحراف تبدیل بشه اگه ما به جای رجوع به کلام الهی به سراغ عباتیدی مثل احادیث، روایات و قصه های ساخت و پرداخته آبا اجداد خودمون بریم قطعا این انحراف تبدیل به فتنه هم میشه اینها باعث شستشوی مغزی ما میشن و باعث انحراف از تعالیم متن مقدس قرآن و کتوب من قبل هستن انشاءاللہ که این برنامه مورد توجه دوستان عزیز واقع شده باشه تشکر میکنم بار دیگه از جناب آقای محمدی شما و شنوندگان عزیز رو به الله واحد قهار می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.